فصل دو دوم در بان جریان کارها شکل دیگری داشت. در بان هیچگاه روی صحنه نرفتم. خانم آنجاست و تاکسی که صدا می زنم مرا به هتل نمیبرد به خانه میبرد. باید می گفتم ما را ماری و من را. در خانم دربانی نیست که او را با کارمند راه آهن اشتباه بگیرم. با این حال این خانه که در سال فقط سه تا چهار هفته در آن زندگی می کنم، از هر هتلی برایم غریبه است. در بیرون ایستگاه مجبور شدم جلوی خودم را بگیرم تا تاکسی صدا نزنم این کار به قدری برایم عادی شده است که بی اختیار انجام می گیرد فقط یک مارک در جیب داشتم و صدا زدن تاکسی ممکن بود و از ناراحت کنندهی برایم ایجاد کند روی پله های روبروی ایستگاه ایستادم و یک بار دیگر کلیدهای در ساختمان، در آپارتمان و کلید میز تحریرم را وارسی کردم کلید دو چرخ در کشای میزم بود مدت هاست فکر برنامه که با یک دسته کلید یخی درست شده باشد مرا به خود مشغول کرده دسته کلیدی که از یخ باشد و ضمن اجرای برنامه آب شود پول برای تاکسی نداشتم و برای اولین بار در زندگیم واقعا به پول احتیاج داشتم زانویم ورم کرده بود و مجبور بودم لنگ لنگان از میدان جلوی ایستگاه بگذرم و داخل خیابان پست شوم دو دقیقه راه فاصله میان ایسکا و خانهمان به نظرم بی نهایت آمد. به دستگاه خودکار فروش سیگار تکه کردم و به خانه که پدر بزرگم آپارتمانی از آن را به من بخشیده بود خیره شدم. آپارتمان ها مانند قوطی روی یکدیگر منظم خوش ترکیپ سوار شدهاند و بالکن‌ها ها با رنگ های دلنشنی رنگ شدهاند. 5 طبقه با پنج رنگ متفاوت، در طبقه پنجم که من زندگی می میکنم بالکن و تمام در و دیوار آپارتمان به رنگ مسی است. آیا برنامه‌ای بود که اجرا کردم؟ انداختن کلید در قفل در ساختمان بدون تعجب از اینکه آب نمی شود؟ باز کردن در آسانسور و فشار دادن دکمه طبقه پنجم، صدای دلنشین آسانسور مرا بالا برد. از شیشه باریک آسانسور، راه روی هر طبقه و از پنجره راهرو رو بیرون را میدیدم. بنای یاد بود و میدان و کلیسا را را با بانو افکن غرق در نور کرده بودند. میان هر طبقه کلوفتی سیاه سقف فاصله بود و سه بار منظره غرق در نور بنای یاد بود و میدان و کلیسا و بار چهارم فقط میدان و کلیسا دیده میشد. کلید آپارتمان را در قفل انداختم از اینکه در واقعا باز می شود تحجب نکردم. همه چیز در آپارتمانم به رنگ مسیس درها دیوارها و گنجهایی که توی دیوار کار گذاشتهاند. یک زن در رب شامری به رنگ مسی روی کاناپه سیاه رنگ میتوانست با آن خوب جور در بیاید شاید میتوانستم چنین زنی را داشته باشم ولی من تنها دوچار مالی خولیا سردرد بیتفاوتی و قدرت اسرارآمیز تشخیص بو از پشت تلفن نیستم وحشتناکترین مرزم تک است. تنها یک زن وجود دارد که من می توانم تمام آن کارهایی را که مردان دیگر با زنان متعدد می کنند با او بکنم و این زن ماری است و از وقتی ماری مرا ترک کرده توی زندگی می کنم که یک راهب باید زندگی کند ولی من راهب نیستم بارها فکر کردم که به ده بروم و در مدرسه که درس می با یک کشیش مشورت کنم ولی کشیش ها انسان را موجودی چند همسر می دانند و به همین دلیل با این سرسختی از تک همسری دفاع می کنند و مرا موجودی ناقص الخلقه خواهند دانست و پندی که خواهند داد چیزی جز این نخواهد بود که به طور سربسته آنطور که عقیده دارند بگویند عشق قابل خرید است اعمال پروتستانو هنوز می مرا به تعجب تع مثل کاسترد که واقعا موفق شد حیرت زدم کند ولی اعمال کاتولیک ها دیگر مرا به تعجب نمیاندازد. من نسبت به مذهب کاتولیک گرایش زیادی نشان میدادم حتی پس از آن که ماری برای اولین بار مرا با خود به جلسه کاتولیک های ترقی خواه برد. ماری دلش میخواست کاتولیک های روشن فکر را به من نشان بدهد و طبیعی است که دلش امیدوار بود که من روزی کاتولیک بشدم. همه همه کاتولیک ها این اندیشاند. حتی اولین لحظه که با این جمع گذراندم برایم وحشتناک بود آن زمان من مرحله سختی رو برای تبدیل شدن به دلغکی کامل میگذراندم. هنوز بیست و دو سالم تمام نشده بود و تمام روز تمرین میکردم. از رفتن به این جلسه خیلی خوشحال بودم خسته بودم و توقع داشتم در اون جلسه با محیطی شاد و شراب خوب بیحساب و غذای خوب و شاید رقص روبرو شدم آن موقع وضع مالی من بسیار بد بود و ما نمی توانستیم شراب بخریم نه غذای کافی. به جای آن شراب بدی به ما دادند و محیطی وجود داشت که من موقعیت یک دانشجوی جامعه شناسی را موقعی که در مقابل استاد کسل کننده ای است چنان تصور می تنها ناراحت کننده نبود بلکه به طرزی غیر طبیعی و بیش از حد لزوم ناراحت کننده بود. ابتدا دست جمعی دعا خواندند من در تمام مدت نمی با دستها و صورتم چه کنم. من فکر می کنم یک آدم لامذهب را نباید در چنین وضعی قرار داد. آنها حداقل دعاهای معمولی مثل ای پدر ما یا آوه ماریا را نمی همانها هم کافی هم بودند که مرا در این وضع قرار دهد ولی با تربیت پروتستانیم که دارم چشم گوشم از آنها پر است. نه دعایی بود که متن آن را کینکل انشا کرده بود. بسیار حساب شده. و تو را نیایش میکنیم ما را قدرت دهی که بتوانیم حق گذشتگان و آیندگان را بدون تبعیض ادا کنیم و کلماتی نزیران. و پس از آن به دستور جلسه اصلی درباره فقر در اجتماعی که در آن زندگی میکنیم رسیدند آن شب بدل به ناراحت کننده ترین شب زندگی من شد من نمیتوانم قبول کنم که بحث های مذهبی باید تا این حد خسته کننده باشند. من می دانم که اعتقاد به این مذهب کار مشکلی است. رستاخیز جسمی و یک زندگی ابدی. ماری بارها برایم از روی کتاب مقدس خوانده بود. باید مشکل باشد که بتوان همه ی آنها را قبول کرد. بعدها، حتی آثار کیرکگور را خواندم. برای کسی که میخواهد دلغک شود بسیار سودمند است. مشکل بود ولی خسته کننده نبود. من نمیدانم آیا آدم هایی وجود دارند که رومیزیشان را رو از روی آثار پیکاسو یا کله به بافند یا نه. آن شب اینطور به نظر من می آمد که این کاتولیک‌های های از توماس اکویناس، فرانچسکو سیزی، بوناونتورا و لعای سیزده هم برای خودشان پیشبند می دوزند. مسلم است که این پیشبند لختیان ها را نمیپوشاند چون هیچ یک از حاضران در جلسه غیر از من درآمد آمد ماهیانش کمتر از 1500 مارک نبود این موقعیت برای خودشان هم انقدر ناراحت کننده بود که بعداً سعی در لاپوشانی تنها برای اتصاب تمام جریان رنجاور بود، به طوری که از من خواهش کرد سیگاری به او بدهم اولین سیگاری بود که در عمرش می کشید، آن را با نابلدی آشکار دود می کرد و من می‌دیدم از اینکه دود صورتش را میپوشاند خوشحال است، حالا بد بود، به خاطر ماری که لرزان و رنگ پریده در گوشه نشسته بود، نراهتی ماری بیشتر از داستانی بود که کینکل درباره مردی گفت که وقتی 500 مارک در ماه درآمد داشت میتوانست زندگیش را اداره کند. بعد درآمدش به هزار مارک رسید و متوجه شد که زندگیش مشکل تر شده است و وقتی دو هزار مارک درآمد پیدا کرد از آن هم مشکل تر شد. تا آقابت وقتی درآمدش به سه هزار مارک رسید متوجه شد که دوباره میتواند زندگیش را خوب اداره کند. آن وقت تجربیاتش را در این جمله خردمندانه خلاصه کرد. با 500 مارک در ماه خوب می شود زندگی کرد اما درآمد میان 500 و سه هزار مارک بدبختی محز است. کینکل در ضمن صحبت متوجه نبود که چه می کند؟ در حالی که سیگار برگ کلوفتی دود می کرد، گیلاس شرابش را جلوی دهانش نگاه داشته بود و مرتب تکه های پنیر را گورت می داد و چنان خوشحال و مغرور مزخرف می گفت که حتی زومرویلد کشیشی که مشاور گروه بود آرامشش را از دست داد و صحبت را عوض کرد گمان می کنم زومرویلد کلمه ارتجار را بر زبان آورد و, و کینکل آن را به خودش گرفت انگامی که ادعا می کرد، یک اتومبیل دوازده هزار مارکی از یک اتومبیل چهار هزار و پانصد مارکی ارزان است با عصبانیت سخنرانیش را قطع کرد و حتی زنش که در هر صورت از او حمایت می کند نفس راحتی کشید